هیچ کس نبود امروز میخوام قصه ی یان پسر سرباز رو براتون تعریف کنم در سرزمین غربی گریانیک شوالی زندگی میکرد که ست دختر داشت در تمام جزیرهای اونجا هیچ کس در زیبایی و مهربونی به پای اونها نمیرسید همه مردم اونها رو دوست داشتند. روزی ست دختر روی ای در کنار دریا نشسته بودند و پاهای خودشون رو در آب فرو کرده بودند در همون موقع جانور عظیم و ای از زیر امواج آب بیرون اومد و اونها رو با خودش به قعر اقیانوس کشید مردم ان روز گریهوزاری زیادی کردند هیچکس نمیدونست اونها کجا رفتند و چطور باید اونها رو پیدا کرد در همون زمان در شهری بسیار دورتر از اونجا سربازی زندگی میکرد که سه پسر داشت که همگی جوانانی برازنده و قوی و بهترین بازیکنان هاکی در اون سرزمین بودند اون سال در ایام کریسمس که زمان دیدار اقوام با هم دیگه و جشن جشنهای با شکو بود یان جوانترین برادر گفت بیاید یک مسابقه حاکی روی چمن زمینهای شوالی گریانیک برگزار کنیم چون زمینهای اونجا بسیتر و چمن اون نرمتر از زمینهای ماست اما برادران دیگه جواب دادن نه اون قصه داره و یاد بازیهایی خواهد افتاد که قبلا انجام می دادیم و دخترانش اون رو تماشا میکردند یان گفت چه خوشش بیاد یا نیاد ما امروز روی چمنهای اون بازی خواهیم کرد این کار انجام شد یان سه بازی رو از برادرانش برد اما پادشاه که از پنجره اتاقش اونها رو نگاه میکرد و خشمگین بود به مردانش گفت که اون سه جوان رو به حضورش بیارن وقتی که در تالار ایستاد و اونها رو دید دلش قدری نرم شد اما با چهرهٔ عصبانی پرسید چرا در مقابل قلعه من بازی کردید در حالی که خوب میدونید که من یاد دخترانم میفتم باید خودتونم از عذابی که به من دادید رنج ببرید یان جوانترین برادر پاسخ داد چون به شما بد کردیم یک کشتی برای ما بسازید تا ما با اون به جستجوی دخترانتون بریم هر جای این اقیانوس که باشن قبل از پایان یک سال اونها را پیدا میکنیم و به گریانیک برمیگردونیم کشتی در طی هفت روز ساخته شد غذا و آب فراوانی هم در اون ذخیره کردند سه برادر کشتی رو به دریا انداختند و به راه افتادند بعد از هفت روز به ساحلی با شنهای سفید رسیدند و به خشکی رفتند کدوم از اونها قبلا اون سرزمین رو ندیده بودند و به اطرافشون نگاه میکردن. بعد دیدن کمی دورتر تعدادی از مردان روی صخره کار میکنند و مردی بالای سر اونها ایستاده بزرگترین برادر پرسید: اینجا کجاست؟ اون مرد جواب داد: اینجا محل زندگی سه دختر شوالیه گریانیگه که قرار فردا با سه قول عروسی کنند. مرد جوان دوباره پرسید: چطور میتونیم اونها رو پیدا کنیم؟ مرد جواب داد: برای رسیدن به دختران شوالیه گریانیک باید به داخل این سبت ها برید و شما رو با طناب به بالای این صخره بکشن. بزرگترین برادر گفت: اینکه کار آسونیه. بعد به داخل سبد پرید. و سبد فوراً شروع به حرکت به سمت بالا کرد. تازه نیمی از راه رو رفته بود که یک کلاق بزرگ سیاه به طرفش پرواز کرد و اونقدر بهش نک زد که تقریباً کور شد. به طوری که چاره جز بازگشت از راهی که اومده بود نداشت. بعد برادر دوم به داخل سبد رفت اما همون اتفاق برای اونم افتاد چون کلاق با اونم حمله کرد و اون هم مجبور شد برگرده. یان گفت حالا نوبت منه. اما وقتی که به نمیگه راه رسید کلاغ به اونم حمله کرد. یان خطاب به مردانی که تناب رو گرفته بودن فریاد زد سریتر بکشید سریتر و گرنه کور خواهم شد. مردان با تمام توان خودشون تناب رو کشیدن و لحظه بعد یان به بالاک سخره رسید و کلاغ پشت سرش ایستاد. کلاغ که حالا کاملا آرام بود پرسید کمی توتون به من میدی؟ یان جواب داد ای موجود پست. به تو که به چشمام نک میزدی توتون بدم کلاغ در پاسخ گفت این وظیفه من بود اما تو به من توتون بده چون من برات دوست خوبی خواهم شد یان مقداری توتون به کلاغ داد کلاغ اون رو زیر بال خودش پنهان کرد و بعد به حرف زدن ادامه داد حالا تو رو به خونی قول بزرگ میبرم که دختر شوالیه سرگرم خیاتی در اونجاست و اونقدر سوزن میزن و گریه میکنه که حتی انگشتانش هم از اشک تر میشه کلاغ جلوی یان جستخیزکنان به راه افتاد اونها رفتند و رفتند تا اون که به خونه بزرگی که درش باز بود رسیدند. اونها وارد شدند و از تمام ها گذشتند و سرانجام دختر شوالیه رو به همون صورتی که پرنده گفته بود پیدا کردند. دختر پرسید چه چیزی تو رو به اینجا کشونده؟ یان جواب داد چرا نباید به جایی که تو هستی بیام؟ دختر در جواب گفت یک قول منو به اینجا آورد. یان گفت میدونم اما به من بگو قول کجاست تا اونو پیدا کنم. دختر پاسخ داد اون در تپه شکاره و فقط لرزش زنجیر آهنی که بیرونه در آویزون اون رو خونه برمیگردونه اما از این سو تا اون سوی دریا و حتی در اعماق اون هیچ مردی به جزیان به سر سرباز که الان فقط شونزده سال داره نمیتونه با اون بجنگه اما اون چطور قادر به مقابله با قوله یان جواب داد در سرزمینی که من از اون اومدم مردان قوی زیادی مثل یان وجود دارند اون خارج شد و زنجیر رو کشید، اما نتونست اون رو تکن بده و به زانو افتاد. بعد فورا از جا برخاست و در حالی که تمام نیروش رو جمع کرده بود زنجیر رو گرفت. این بار توری اون رو کشید که حلقه اون از هم باز شد و قول صدای اون رو در تپه شکار شنید. و در حالی که سرش رو بلند میکرد با خودش گفت: ظاهراً شبیه صدای یان پسر سربازه، اما اون که فقط 16 سال داره، بر حال بهتره یه سر به خونه بزنم. قول به خونه برگشت و هنگام ورود به قلعه از پسر پرسید آیا تو یان پسر سرباز هستی؟ جوان که نمیخواست شناخته بشه جواب داد معلومه که نیستم. قول گفت پس تو کی هستی؟ در این سو و آن سو و اعماق دریا هیچ کس نمیتونه زنجیر نبرد من رو حرکت بده. یان جواب داد من همونطور که با مادرم کشته میگیرم با تو هم کشته میگیرم. اون وقت این مسئله برات روشن میشه. در کشتی با مادرم اون یک بار از من پیش میفته و دوبار شکست میخوره. به این ترتیب اونها با هم کشتی گرفتن و به هم پیچیدند و مبارزه کردند تا اینکه قول یان رو به زانو در آورد. یان گفت و قوی تری. قول جواب داد همه اینو میدونن. اونها دوباره با هم گلاویز شدند. سرانجام یان قول رو زمین انداخت و آرزو کرد که کاش کلاق اونجا بود تا بهش کمک کنه. به محض اینکه این آرزو رو کرد، کلاغ ظاهر شد. کلاغ گفت دستت رو زیل بار لاست من ببر، کاردی رو پیدا می کنی که اونقدر تیسه که بتونی سر اون رو جدا کنی. کارد به قدری تیز بود که سر قول به یک ضربه از تن جدا شد. کلاق گفت حالا برو و این ماجرا رو به دختر شوالی گریانیک بگو. اما مبادا به حرفای اون گوش کنی و جلو بری چون اون سعی خواهد کرد تو رو معطل کنه. در عوض به جستجوی دختر وسطی برو و وقتی که پیداش کردی مقداری توتون به من پاداش خواهی داد. یان جواب داد نیمی از تمام تو تونهام رو تا حالا گرفتی اما کلاغ سرش رو به نشانه مخالفت تکون داد و گفت تو اونچه رو که روی داده می دونی و به اونچه که پیش رو داری آگاه نیستی. اگر شکست نخوردی خودت رو در آب زلال بشور و از ظرفی که بالای در قرار داره روغن بردار و به بدن خودت بمال و فردا قدرت چند برابر خواهد بود و من تو رو به محل سکونت دختر وسطی خواهم برد. یان همونطور که کلاغ بهش گفته بود عمل کرد و با وجود های دختر بزرگتر به جستجوی خواهر وسطی رفت. خواهر دومی پرسید چه چیزی تو رو به اینجا کشونده؟ یان جواب داد چرا نباید به جایی که تو هستی بیام؟ چرا داری گریه میکنی؟ دختر گفت چون فردا باید با قولی که در تپه‌ی شکار عروسی کنم. یان جواب داد چطور میتونم اونو به خونه بکشونم؟ دختر جواب داد هیچ چیز نمی‌تونه اونو به اینجا بکشونه. مگر لرزش اون زنجیر آهنی که در بیرون دروازه آویزونه، اما در این سو و آن سو و اعماق دریا هیچ کس به یان پسر سرباز که الان فقط 16 سال داره نمیتونه با اون بجنگه. یان گفت در سرزمین من مردان بسیاری با قدرت یان وجود دارن اون خارج شد و زنجیر رو کشید اما نتونست اون رو حرکت بده و به زانو افتاد بعد از جا بلند شد تمام قواش رو جمع کرد و زنجیر رو گرفت و این بار طوری اون رو کشید که سه حلقه اون از هم باز شد. قول دوم صدای اون رو در تپه شکار شنید. سرش رو بلند کرد و با خودش فکر کرد ظاهراً صدای یان پسر سربازه اما اون که فقط 16 سال داره. به بهتر یه نگاهی بندازم. اون به خونه برگشت و موقع ورود به قلعه پرسید آیا تو یان پسر سرباز هستی؟ یان که دلش نمیخواست قول اون رو بشناسه جواب داد مسلما نه. اما مثل اون با تو کشتی خواهم گرفت بعد اونها با هم گلاویز شدن و قول اون رو به زانو افکند یان فریاد زد تو قوی تری. اما من هنوز شکست نخوردم بعد در حالی که از جا بلند می دستهاش رو دور بدن و قول حلقه کرد اونها با هم کلنجار رفتند اول یکی برتر بود و بعد دیگری اما سرانجام یان پاش رو به دور قول پیچید و اون رو به زمین انداخت بعد کلاق رو صدا زد کلاخ پر و بال زنان به طرف اون پرواز کرد و گفت دستت رو زیر بال راست من ببر. کارد تیز رو پیدا خواهی کرد که برای جدا کردن سر اون مناسبه. کارد واقعا تیز بود چون فقط با یک زربت سر, سر از تن قول جدا کرد. کلاخ گفت حالا خودت رو با آب گرم بشور و روغن بلسان رو به تمام بدنت بمال. فردا نیروت چند برابر خواهد شد اما مراقب حرفای دختر شوالیه باش. چون کلک میزنه و سعی میکنه تو رو پیش خودش نگه داره حالا بدرود اما قبل از رفتن مقداری توتون به من بده یان در حالی که مقدار زیادی توتون به اون میداد در پاسخ گفت با کمال میل اون شب اون همون طور که کلاق گفته بود خودش رو شست و روغن به بدنش مالید و روز بعد وارد اتاق که دختر شوالیه نشسته بود شد دختر گفت اینجا بمون و با من ازدواج کن یک عالم نقره و طلا در قلعه وجود داره اما یان توجهی نکرد و به راهش ادامه داد تا اینکه به قلعه رسید که کوچکترین دختر شوالیه در حال خیاطی در تالار اون بود و اشک از چشم‌های اون بر روی انگشتانش می‌چکید دختر از اون پرسید چه چیزی تو رو به اینجا کشونده یان جواب داد چرا نباید به جایی که تو هستی بیام دختر گفت منو یه قول به اینجا آورده یان گفت من از این موضوع خبر دارم دختر پرسید آیا تو یان پسر سربازی یان دوباره جواب داد بله اما به من بگو چرا داری گریه میکنی دختر حقیق کنان گفت فردا قول از تپهٔ شکار برمیگرده و من باید باش عروسی کنم یان توجهی نکرد و فقط گفت چطور میتونم اون رو به خونه برگردونم دختر گفت زنجیر آهنی رو که بیرون دروازه آبیزونه حرکت بده یان بیرون رفت چنان زنجیر رو کشید که از شدت اون خودش به زمین افتاد اما بلافاظر از جا بلند شد و زنجیر رو با چنان نیروی گرفت که چهار حلقه اون از دستش جدا شد قول که داشت حیوانی رو که شکار کرده بود در کیسه ای میگذاش صدای اون رو شنید قول گفت در این سو و آن سو و اعماق دریا هیچ کس نمیتونه زنجیر منو اینطوری بکشه مگر یال پسر سرباز. اگر به من رسیده پس کشته. حتما دو با این فکر با گام های بلند به قلعه برگشت در حالی که زمین زیر پاهاش می رسید. اون پرسید آیا تو یان پسر سربازی؟ جوان جواب داد نه. قول گفت پس تو کی هستی که تونستی زنجیر منو بکشی؟ در این سو و آن سو و اعماق دریا فقط یان پسر سربازه که می تونه شون این کاری بکنه و اون هم فعلا فقط 16 سال داره. یان گفت وقتی که با من کشتی بگیری به تو نشون خواهم داد که من کی هستم. اونها با هم گلاویز شدند و قول یان رو به زانو افکند. اما در یک لحظه یان از جا بلند شد و در حالی که پاش رو به دور شانه های قول حلقه کرده بود، اون رو محکم به زمین انداخت. یان فریاد زد کلاق سیاه گنده، زود بیا. کلاق اومد و با بالهاش ضربهی به سر قول زد، طوری که نتونه از جاش بلند شه بعد بیان گفت کارد تیزی رو که کلاق برای چیدن میوه از اون استفاده میکرد، از زیر پرهاش بیرون بیاره." و یان سر قول رو با اون جدا کرد اون کارت به قدری تیز بود که سر قول با یک ضربه جدا شد و روی زمین قلتید. کلا گفت امشب هم استراحت کن فردا باید سه دختر شوالیه رو به لبه صخره که به عالم پایین راه داره ببری اما مواظب باش که اول خودت پایین بری و اونها به دنبال تو بیان حالا قبل از اینکه برم باید مقداری توتون به من بدی یان جواب داد همش رو بردار چون این پاداش کمکهای خوبی که به من کردی کلاغ گفت نه فقط کمی بده تو اونچرا که پشت سر گذشتی میدونی اما به اونچه که پیش رو داری آگاه نیستی کلاغ در حالی که توتون رو به منقار خودش گرفته بود پرواز کرد و رفت به این ترتیب صبح روز بعد کوچکترین دختر شوالیه ها رو با تمام و نغراوتله‌های موجود در قلعه بار کرد و همراه با یان پسر سرباز راهی محلی شد که قاهر دومی منتظر بود ببینه چه پیش خواهد اومد؟ اون هم چیزهایی با ارزش قلعه رو بال علاققا کرده بود و وقتی که به قلعه ای رسیدن که بزرگترین خواهر در اون محبوس بود دیدن که اون هم همین کارو کرده. اونها همگی به لبه صخره رفتن و بعد یان خم شد و فریاد زد و ثبد بالا رفت و اونها یکی بعد از دیگری سوار اون شدند و پایین اومدند. وقتی که آخرین نفر پایین رفت یان هم باید چنین میکرد و میگذاشت سه خواهر پشت سر اون حرکت کنند. اما هوشدار کلاغ رو از یاد برده بود و با اونها گفت که اول اونها برن تا مبادا اتفاق بیفته فقط از خواهر کوچکتر خواهش کرد که کلاه کوچک طلایی رو که مثل دو خواهر دیگه برسرداش به اون بده بعد به اونها کمک کرد که یکی یکی وارد سبد بشن اون مدتی طولانی منتظر برگشت سبد شد اما سبد هرگز بالا نیومد چون دختران شوالیه از شدت شادی به خاطر آزادیشون یان رو به کلی از یاد برده بودند و سوار بر که یان و برادرانش رو به سرزمین گریانیک آورده بود شده بودند. یان فهمید که چه بلایی بر سرش اومده و در حالی که داشت دنبال بهترین راه حل میکش، کلاق پیش اون اومد. کلاق با ناراحتی گفت: "به من گوش نکردی." یان در حالی که سرش رو پایین انداخته بود جواب داد: "نه، برای همینم الان اینجا هستم." کلاغ ادامه داد: "گذشته گذشته؟ کسی که توصیه نمیپذیره باید بجنگه امشب در قلعه قول خواهی خوابید حالا باید مقداری توتون به من بدی باشه اما خواهش میکنم با من در قلعه بمون کلاق گفت این کار نمیتونم بکنم اما صبح خواهم اومد بام داد روز بعد کلاق به اونجا اومد و بیان گفت که به استبل قول به سراغ عصبی بره که میتونست در خشکی و دریا حرکت کنه بعد اضافه کرد اما مراقب شکل ورود خودت به استبل باش چون در مدام باز و بسته میشه و اگر با تو تماس پیدا کنه فریادت بلند خواهد شد. من اول میرم تا راه اون رو به تو نشون بدم. یان گفت برو. کلاغ جهشی کرد و فکر موفق شده اما در به یکی از پرهای اون برخورد کرد و اون فریاد کشید. بعد یان دورخیزی کرد و جهید اما در به یکی از پاهاش برخورد کرد و اون از شدت درد کف استبل افتاد. کلاغ به سرعت به طرف اون پرواز کرد. یان رو به میان چنگال و منقار خودش گرفت و به قلعه برد. در قلعه پمادی به پای اون مالید. طوره که مثل اول سالم شد. کلاغ گفت حالا بیا بیرون قدم بزن. اما مراقب باش. از اون چه که میبینی شگفت زده نشی. به هیچ چیز هم نباید دست بزنی. اما اول کمی توتون به من بده. یان بیشتر از اونچه که تصورش رو میکرد در اون جزیره چیزهای عجیب و غریب دید در درهای سه جنگجو دراز به دراز افتاده بودند و با نیزه هایی که هنوز در سینشون بود در حال مرگ بودند اما یان توصی کلاق رو به یاد آورد و چیزی نگفت فقط نیزه ها رو بیرون کشید مردها نشستند و گفتند تو یان پسر سرباز هستی و تلزم شدی تا همراه ما به قار مایگیر سیا بیای به این ترتیب با هم سپار شدند تا اینکه به غار رسیدند و یکی از مردان وارد شد تا گوش و کنار رو زیر نظر بگیره او عجوزهٔ هلناکی رو مشاهده کرد که روی سنگ نشسته بود و قبل از اینکه حرفی بزنه جادوگر ضربهای با چوب دست خودش به مرد زد و اون رو تبدیل به سنگ کرد و همین بلا رو سر دو نفر دیگه هم آورد عاقبت یان وارد قار شد زاهره گفت این مردها تلسم شدن و به همین حال باقی میمونند مگر اینکه تو آبی رو که باید از جزیره زنان بزرگ بیاری به بدن اونها بمالی مواظب باش تأخیر نکنی یان با دلی لرزان برگشت چون اون به کوچکترین دختر شواری دل بسته بود کلاق در حالی که به سمت اون میپرید گفت تو به توصیه من عمل نکردی و برات مشکل پیش اومد اما فعلا بخواب و فردا باید سوار اسبی که در استبل قول هست بشی اسبی که میتونه در دریا و خشکی بتازه وقتی که به جزیره زنان بزرگ می‌رسی، 16 پسر به استقبال تو میان و برای اسب غذا میارن و سعی می‌کنن سینو افسار اون رو به دست بیارن. اما مراقب باش اون رو لمس نکنن. خودت به اسب غذا بده و خودت اون رو به استبل ببر و در رو ببند. در ازای هر یک از اون 16 پسر یک بال عفر رو به چرخون. حالا باید مقداری توتون به من بدی. صبح روز بعد یان اسب بیدار شد و اسب رو از استبل خارج کرد. بی آنکه در استبل آسیبی به اون برسونه و با اون در دریا تاخت تا اینکه به جزیره زنان بزرگ رسید. شانزده مهتر رو اونجا دید. هر یک از اونها پیشنهاد کرد که اسب رو بگیره و به اون قضا بده و به استبل ببره. اما یان جواب داد من خودم اسب رو به اونجا میبرم و به اون رسیدگی میکنم. و همین کار رو هم کرد. وقتی که داشت پهلوهای اسب رو میمالید، حیوان بهش گفت اونها انوای نوشیدنی رو برات خواهند آورد. اما مراقب باش. چیزی به جز آب ننوشی. همین اتفاق روی داد و وقتی که 16 میتر جوان دیدن اون چیزی نمیخوره خودشون همه نوشیدنی ها رو نوشیدند و یکی پس از دیگری بر زمین افتادند. یان یعنی خوشحال بود که در مقابل وسوسه‌های اونها مقاومت کرده اما نصیحتی رو که بهش کرده بود از یارد برد. اسب گفته بود مواظب باش خوابت نبره وگرنه شانس بازگشت به خونه رو از دست میدی زمانی که جوانان خواب بودند، موسیقی دلنگیسی به گوش رسید و اون هم به خواب رفت. در همین موقع اسب از در استبل گذشت. لگد محکمی به یان زد و اون رو از خواب بیدار کرد. اسب گفت: به توصیه من گوش نکردی. خدا کنه که برای گذشتن از دریا دیر نشده باشه. اما یان اول شمشیر رو که روی دیوار آویزونه بردار و سر اون شانزده مهتر رو ببرد. یان که از بیتوجهی دوباره خود شرمگین شده بود بلند شد و به طرف اسب عمل کرد. بعد به سمت چاه رفت و کمی آب در مشک ریخت و پشت اسب پرید و از راه دریا به طرف جزیره رفت که کلاق در اونجا منتظرش بود. کلاق گفت اسب رو به استبل ببر و خودت بخواب چون فردا باید اون جنگجوها رو دوباره زندگی کنی و ساهیره رو بکشی. مواظب باش مثل امروز کار احمقانی نکنی. یان خواهش کرد همراه من باش. اما کلاغ سرش رو به علامت مخالفت تکون داد پرواز کرد و رفت صبح روز بعد یان از خواب بیدار شد و شتابان به سوی قار رفت ساهر اونجا نشسته بود و یان قبل از اینکه ساحره اون رو طلسم کنه اون رو کشت بعد روی جنگجویان آب پاشید و تلسم اونها باطل شد و همگی با هم به سمت دیگر جزیره رفتن و کلاغ رو در اونجا دیدن کلاغ گفت بالاخره یک بار به توصیه که به تو شده بود عمل کردی حالا که عاقل شدی میتونی دوباره به خونه گریانیک برگردی در اونجا خواهی دید که امروز دو دختر بزرگتر شوالیه با دو برادرت و کوچکترین دختر رو با رئیس مردانی که در صخره بودن عروسی میکنن. اما باید کلاه طلایی اون رو به من بدی و اگر میخوای فقط باید به من فکر کنی و من اون رو برات خواهم آورد. یک هشتار دیگر هم به تو میدم اگر کسی از تو پرسید که از کجا اومدی بگو که از پشت سرت اومدی و اگر کسی از تو پرسید که به کجا میری بگو به جلو میری به این ترتیب یان سوار اسب شد و روی اون رو به سمت دریا و پشتش رو به سمت ساحل کرد و به راه افتاد. رفت و رفت تا به کلیسای گریانیک رسید. اونجا در چمنزاری در کنار چشمه از زین پایین اومد. اسب بهش گفت حالا شمشیرتو در بیار و سر من رو ببر. یان جواب داد اما در مقابل این همه کمکی که به من کردی این کار حق ناشناسی محسوب میشه اسب گفت این تنها راه باطل کردن طلسمی که منو کلاق به اون گرفتار شدیم چون من دوشیزه بودم و اون خواست کار من بود پس نترس و کاری رو که گفتم بکن بعد یان همونطور که اسب گفته بود شمشیرشو در آورد و سر اون رو برید و بی آنکه به پشت سر خودش نگاه کنه به راه افتاد در هنگام رفتن چشمش به زنی افتاد که در درگاه خونش ایستاده بود زن از اون پرسید از کجا میاد؟ و یان همونطور که اسب بهش گفته بود گفت از سر میاد بعد زن از اون پرسید که به کجا میره این بار یان جواب داد که به جلو میره اما است و درخواست نوشیدنی کرد زن گفت تو جوان گستاخی هستی اما من به تو نوشیدنی خواهم داد زن قدری شیر رو که تنها چیزی بود که در خونه داشتن به یان داد یان از اون پرسید شوهرت کجاست زن بهش جواب داد اون در قلعه شوالیه است و تلاش میکنه کلاهی از طلا و نقره برای کوچکترین دختر مثل کلاهای خواهرانش درست کنه کلاهی که در تمام این سرزمین پیدا نمیشه اما ببین اون داره میاد و حالا تعریف میکنه که کار به کجا رسیده در همین موقع مرد از در وارد شد و با مشاهده جوانی غریبه بهش گفت کاری چیه پسر یان جواب داد من تلاساز هستم مرد در مقابل گفت پس اقبال با من یار بوده چون میتونی به من کمک کنی تا کلاهی برای دختر شوالیه بسازم یان گفت میدونی که نمیتونی اون کلاه رو بسازی مرد جواب داد خب باید سعی کنم اگر به داراو بختم خواهم شد بنابراین کمک کردن به من کار خیریه یان گفت اگر بتونم به تو کمک خواهم کرد اما تلا و نقره رو برای خودت نگهدار و امشب در کارگاه تلاسازیت منو به حال خودم بگذار تا جادوی خودم را انجام بدم مرد با تعجب یان رو به کارگاه تلاسازی برد و در رو به روی اون قفل کرد به محض قفل شدن در کارگاه یان آرزو کرد که کلاق ظاهر بشه و کلاق در حالی که کلاه رو به منقار گرفته بود به اونجا اومد کلاق گفت حالا سر من رو ببر اما یان پاسخ داد در مقابل این همه کمکی که به من کردی این ناسپاسی بزرگی محسوب میشه کلاق گفت تو فقط به این شکل میتونی از من قدردانی بکنی چون قبل از اینکه تلس میشم من هم جوانی مانند تو بودم بعد یان با شمشیر سر کلاغ رو برید و چشمهاش رو بست تا چیزی نبینه. بعد دراز کشید و تا صبح خوابید. صبح مرد اومد، قفل در رو باز کرد و یان رو از خواب بیدار کرد. یان در حالی که کلاه رو از زیر بالش خودش بیرون میکشید، با خوابالودگی گفت بیا، این هم کلاه. بعد دوباره به خواب رفت. وقتی که دوباره از خواب بیدار شد، خورشید کاملا در آسمان بالا اومده بود و این بار او یک جوان قد بلند و مو رو در مقابل خودش مشاهده کرد. جوان گفت من کلاغ هستم. تلسما باطل شدن. اما حالا بلند شد و همراه من بیا. بعد اون دو نفر با هم به جایی رفتن که یان اسب رو مرده رها کرده بود. اما حالا دیگه اسبی اونجا نبود و به جای اون دوشیزه زیبا در اونجا ایستاده بود. دختر گفت من اسب هستم. تلسما شکسته شدن. اون و جوان با هم رفتند. در همین موقع مرد تلاساساز کلاه رو به قلعه برده و به خدمتکار کوچکترین دختر شوالیه گفته بود اون رو به خانمش برسونه اما وقتی که چشمای دختر به کلاه افتاد فریاد زد اون دروغ میگه اگه مردی رو که واقعا این کلاه رو ساخته نیاره من اون رو روی درخت کنار پنجرهی اتاقم به دار خواهم آویخت خدمتکار وحشت زده از حرفای دختر شتابان به سوی تلاساز رفت و اونها رو برای وی بازگو کرد اون هم به سرعت به جستجوی یان رفت وقتی که یان رو پیدا کرد اون رو به قلعه برد دختر ابتدا از شدت شادی زبانش بند اومد. بعد گفت با هیچکس از جزیان عروسی نخواهد کرد این خبر به گوش شوالیه گریانیک رسید وقتی که یان ماجرا را براش تعریف کرد شوالیه گفت که حق با دخترشه و دختران بزرگترش هرگز نباید با مردانی ازدواج کنند که پیروزی رو که به اونها تعلق نداشته به خودشون نسبت دادن و عامل اصلی این پیروزی رو به حال خودش رها کردند مهمانان عروسی گفتند که شوالیه حرف درستی زده دو برادر ناچار به ترک اون سرزمین شدن چون کسی حاضر نبود با اونها معاشرت کنه قصه ما به سر رسید اما این بار کلاغ هم به خونش رسید کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می /مهران نقطه ام ای سلاش ام دی نشانی ویبلاگ ما ام b l o مهران دوستی .dot کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد عوستانی